ای کوزگرا بکوشگر حشیاری، تا چند کنی برگل آدم خاری، انگشت فریدون و کف رو روح، نهادی نهادهی چه میپنداری. ای گل تو به روی دل میمانی، و ای مل تو به لعل جانفضا میمانی، ای بخت ستیز کار، هر دم با من بیگان تری و آشنا میمانی. از مطبخ دنیا تو همه دود خوری، تا چند قمانه بود و نابود خوری، دنیا که بر اهل او زیان نیست از این، گردر که زیان کنی همه سود خوری. آزار دل خلق مجویم شبی، تا بر یا یاربینیم شبی، ما و جمال تکه تکمکن، کان را به شبی برند و این را به شبی.